با دلود بر شما همیهنان هم ازمنده مود به خوشنودی اهورا این برنامه رو آغاز میکنیم من مزدا آریا هستم از هموندان جنبش نوزایی ایرانی و شما همکنون بیننده برنامه زرتوش هستید که این برنامه کاریس از روی جنبش نوزایی ایرانی امروز چون برنامههای پیشینمون مهمانی داریم مهمان بسیار ارزشمندی مهندس موبد کامران جمشیدی که ایشون قرنشین انجمن ماترا ما هستند و امروز هم میخواهیم در این برنامه دوباره از دانش گسترده یشون درباره برخی جشتارها بهره بگیریم و من درود میفرستم به شما مباده بزرگ با، سپاس که دعوت ما رو پذیر افتیم. بخشونوی احورامزده و با درودی دوباره به شما و همه بینندگان گرامی راه زرتوش و پیام زرتوش رو پی میگیریم و هم دیگه و میکوشیم تا روشنی بیشتری بریم این پیام با هم دیگه بیندازیم. بله من بسیار از شما سپاس گذارم اود بزرگ از اینکه زمان میگذارید و برای ما و همیهرانمون درباره دین بهی یا دین زرتشتی برایمون میگید و مایع این میشه که آگاهیهای ما و همانمون در این باره بالاتر بده و من های پیشینی که برگزار شده بود. پیام از دوستان می دیدم. که من رو در فیستوب دارن. پیام هایی از خراسان افغانستان کنونی از پارز زبان هایی که در اونجا هستن بسیار بسیار سپاسخداری کردن از شما بویژه از شما و همین هم درون مرز در از جای جای ایران از شما سپاسخداری کردن برای این آمراهی های بسیار دیرا و نیکی که به ما و همین همانمون میشون. من میخوام دیگه زمان رو بیش از این نگیرم و بپردازیم به جستار برنامهمون در مورد دین بهیه ضرف توخصست از شما و من درخواست دارم اوور بودبار بود که برامون در اینکه اش زش که بود آیا ایشون یک پیامبر بود یا یک فیلسوف بود یا یک دانشمند؟ بود؟ چون ما میبینیم و میخونیم که بسیاری در بر این, بر این باورن یا مینویسن که ایشون پیامبر نبود، دانشمن بود وقتی میگویند که فیلسوف بود وقتی اونه دیگری چکران ببینم نگاه شما به عنوان یک موضوع در به این گزتار چه هست؟ چون چه بودن؟ برامون در این باره میشم چه هست من هم میکنم از همه اون هم هم میهنان فهم فرهنگیان هم زبانان هم اندیشانی که از جای گوناگون جهان چه با شما در پیوندن چه با خود من و سپاسگزاری میکنن من هم از شیشون سپاسگذارم از همه شما به خاطر که این یک گروهی است. و یک کار گروهی است اجتماعی است در کنار اینکه هر کدوم از ما چه به تکی تأثیرات خودمون رو روی کل جنبش و جامعه میگذاریم بنابراین با هم, هم باید همازور باشیم و در راه میکو همه با هم بکوشیم سپاس در مورد این واژه پیامبر و حالا فیلسوف و دانشمند و بقیه چیز گفتید من دوباره میخوام اینو بگم و هر چقدر بگیم باز کمه اینقدر باید بگیم تا جا بیرفت یکی اون که همجایی گفتم یک سری واژگان یک سری مفهوم های حالا به گونهی کلیدی و بنیادین اگه اسمشو بذاریم انقدر دگرگون شدن در،, در،, در،, در اون مایه خودشون و در مفهوم اون بنیادین خودشون که دوباره ما گمگور شدیم که این چیه؟ اینه اون خدا چیه پیامبر کدومه کتاب آسمانی کدومه مقدس چیه همه اینها که باز هم میگم اینها دلال خودش داره و بیاید تاثیر جامعه های دیگه ولی این رو هم باز میخوام من یه بار دیگه بگم که حساسیت رو برداریم در کنار اینکه باید تعریفا بشه و کلا به هممون دارم میگن بقیه هی میخوان اینو در واقع بزرگش کنن اصلا برای که برای خودشون حساسه که این جایگاه اینا درست جا بیفته اونجوری که اونها میخوان خب آن باید اون تلاش خودمون رو بکنیم اونجوری که ما میاندیشیم و فکر میکنیم جایگاه درستشونو باید بذاریم زرتشت کی بود زرتشت هم پیامبر بود هم پیام بود، هم پیام لسان بود، هم فیلسوف بود، هم دانشمند بود. چرا؟ نخوست اینکه که... حالا از اینجا آغاز نکنم. وقتی میگه فیلسوف، فیلسوف یعنی چی؟ فیلوسوفیا، یعنی دوستدار دانش. من کسی که دوستدار دانشه بشم کنم فیلسوف. حالا اینکه چه حتما باید شکای خاصی داشته باشه، این فیلسوف مثلا باید یه سری... از خودشنسری فرضیه بیاره توری بیاره بر اساس اونای سیاستی بگیره و, و اینا رو الان ازش میگذارن ولی است که یا کسانی که به دنبال دانش به معنای میتونیم بگیم دانش عقلی آلا به قول دانش روز دانایی آگایی که بشه دست خابل دست باشه و ثابت کردنی باشه و بعضا هم نباشه به هر حال ایشون استوار میتونیم بگیم که به دنبال دانش بود دنبال آگاهی بود پس یک فیلسوف بود در کنار این که از اندیشه های ایشون از آموزه های ایشون از سخنان ایشون ازش فلسفه و جهانبینی میاد بود پس یه فلسفه رو بلدار بذاشت نخستیم فلسفه یک تا شناسی و یک آم شناسی رو در جهان که یک دین جهانی ازش به وجود خواهد این از این و دانشمندم پس ب رسید به اون روشنایی و بینش درون. داستان پیام خب آره ایشون یک پیامی رو اوورد برای برای آره جهانیان برای مردم. این پیام پیام خود ایشون بود که از راه یانش یا الهام یا هر چیزی رو خودش میگوید روشن شد. فهمید درک، مینشش اون اونو دید چشم درون اونو دید و به سر سرچشمه و پاسخگوی پرسش های درونیش رو و سرچشمه همه چیز رو نمشه کداشت به زبان خودش یعنی چی؟ یعنی ای یا هستی هستی بخش و هستی دار و هستی آفرینی که ابرخرد است، ابر دانش است، ابر داناست حالا هر کدوم وقیدانا اگه که بگیم ابر دانش دانش برتر این واجه ما رو به یک سو میبره اگه بگیم ابر دانا، دانای برتر ما رو به یک سوی دیگه میبره در ذهنیات عمومی ما انسانها. ها وقتی میگیم دانا حتما باید یک چیزی باشه یک کسی باشه، یک چیزی باشه که داناست وقتی میگیم دانش یه مجموعی کلیست هر دوی این هم توی این هست توی این پوشیده هست بنابراین ایشون یه پیام بود پیام خودش بود پیامی که الهام گرفته از اهورامزده خودش میدونست بنابراین با واژگان ایرانی باز از این بخوایم بیانش کنیم از گذشته به ایشون پیامبر میدونست حالا این پیامبری در پیامبری اشوزر زیر تأثیر باز میگم سیستم های دیگری باوری و رسولان و انبیاء و پیامبران دیگر قرار گرفت و اون شکل اصلی و بنیادین خودش از دست داد اگر درست بگویم آلوده شد به یه سری چیزهای دیگری که باز پاکیزه کردن اینو و کردن این بیرون شده کار به قول قدیمی هرزاد و چنین هست ایشون همه اینا بود من بهش میگم ایشون همه اینا بود چون میدید چون دریافته بود چون میدید که انسان اولا در ناغایی ها داره به سر میبره در ترس های خودش داره به سر میبره دنبال دانش است. دنبال که بفهم زندگی چیست ایشون هم میخواست بفهمه رفت از دیدگاه خودش فهمید اومد این به بقیه به اونجا که دستش میرسی گفت هم دیدن است. پذیرفتن. بنابراین پیام خودش رو هم به دیگران رسون. من اصمیشون میذارم بینشور. بینشور یعنی دیندار. دعنادار. ایشون بینشور بود و همه این چیزهایی که شما فرمودی در نظر من ایشون بود. بنابراین دیگه جدا نکنیم اصلا این قدم حساسیت به خرج ندیم. اگه زرتوشت رو میگیم پیامبر پیامبر زرتشت هیچ چی میگن؟ زرر و زیانی به هیچ کس نزده و نمیزنه و خدای زرتشت هم خدای خلدر زورگوی نمیدونم مکر کننده و هیلگر و فریب دهنده و در آتش دوزخ آنچنانی سوزان و این ها نیست وقتی در جای درست و ساده و زیبا و نیک که خودش بذاریم همه هم همشون برامون پذیرفته افتن این تعریف من از زرتشت که بود بل سپاس گزارم از شما در درباره این دشار که من هم نگاه میکنم شون رو همه این چیزها که شما گفتید میبینم پیامآور خرط پیامآور شادی پامآور انگیشیدن به دید من نخستین بنیاد خرطگرایی رو هر سفر رو رو ما ایرانیان باید باید باید به که ما ایرانیان رو در این جو بنیادشو در ایران نهاد و از این روی بوده که فرهنگ ایرانی پیش از اسلام این فهم همج و شکوری که داشته از این روی بوده که پایه این فرهنگ پایی نزرتش بوده پایه های فرهنگ انگیشیدن و خردگرایی و شهادونیستی و پیشتویی بوده که از به ما ایرانیان علمقان داشته در امید که دوباره بکوشیم این چنین باشید ما بودگیرامی نسک اوستا برامون بگید یا کتاب عویستا برامون بگید که حالا میدونم این بحث بسیار گسترده هست ولی در اون تراکر این زمانه که در این برنامه داریم در نسک اوستا برامون بگید که چه هست اوستا و اینکه که بسیارانی می بینیم که بسیاری ایران بسیاری دشمنان دین دلید که میبینند بسیاری از ایرانیان یا پارسی زبانان دارند روی به این ببینید و اینها میان برای اینکه اینها رو ساب کنند یا ایرانیون رو پارسی رو به این بین کنند، میان از بخشای از اوستار که تاریخی و سیاره نزدشمندی ما هست بخشای از وندیدوت رو میارند دستوراتی رو میارند و اینها رو انجام میکنن میگن که این دین گونه هست و رو در این باره از نسک عوستا قانون چه هست بگیر و بخش مندیگاهش فرامون بگیر سپاس کذار میشه. بفهم کنم بله خواهش میکنم اگر ما بخوایم نخوست اینجا بیایم که وقتی میگیم نسک عوستا خوب بیرون باید بدونیم که یعنی یک کتاب یا دفتر نیست یک روی همی یک مجموعه ای یک جنگی است از اگر دوشه نوشتار چون وقتی به شکل و نگارشی در میاد چون معمولاً اون رو ما مبنا قرار میدیم حالا گفته ها،, شنیده ها، سینه به سینه ها، سروده ها بخش در یک فرهنگ هنر، موسیقی، نقاشی و و در از دل اونها هم پیام ها میرسن. اما حالا ما به این نگارش ها و نوشته ها اگه بخوام به تاریخ برگردیم این گونه بوده است که روی همه روی همه دانستنی ها و دانش ها و آگاهی های گوناگون که می نگاشتند خب با نگرش به این که در اون زمان ها که صنعت نمیدونم چاپ و کتاب و کاغذ به این شکل امروزی این ها که وجود نداشته در اندازه‌های خودشون نوشتن یک نسخ و کتاب یعنی اینکه یک عمر زحمت نه که دو روز بشینی و فوری توی کابیتر بنویسی و فردام چاپ کنی بری چاپ چاپ کنی خب اینجوری که نبوده و بنابراین برایی که چون جامعه هم با به قول معروف با بنیاد اون آموزش های عشوزرتوش به خیلت گرایی روورده بود به دانش اندوزی رو بود خب میخواست این تجربیات و دانش رو نگه داره به صلاح به پشتهای بعدی برسونه و خب اینها رو مینوشت و جمع یک مجموعه بزرگی شد. حالا نام اوستا که وقتی ما میزنیم روی این مجموعه اوستا نام در واقع نامی بوده که اون روی اون میشنی زبان ایرانی اون موقع زبان و نگارش ایرانی اون موقع گذاشته بودیم و امروز با اون ناماینه رو خطاب میکنیم. خب این مجموعه، این دانشنامه، این جنگ میدانیم که نخستین بار خوب این وجود داشت و در دو نسخه هم, هم اینا رو به کپی برداری کردن نسخه برداری کردن در دو نسخه بزرگ در دو بخش گوناگون ایران در دو آتشکده بزرگ که آتشکده ها می گنج نامه یا کتابخانه هم بودند یکی در آتشکده آذربوشه آتش است در شیز آذربایجان در آزربایجان امروزی بود آذرباتگان و یکی هم در تخت جمشید یا استخر در گنجنامه اونجا نگاه داریم شد خب که آمد الکساندر, الکساندر گوجستک ما میگوییم نفرین شده راستی نفرین شده بود این چهست حالا چقدر بزرگش کنم در غرب اونها داستان خودش داره ولی ایشون رو با تمام هدفمندی هایی که داشت به در درون ایران آمده بود تا با شناختی که آموزگارانش هر از تو داده بشتاده بودن اومده بود که بونو ریشه رو بزن میدونست کجاست چرا رفت در استحخ از جمله شمار بزرگی از موودان و هیلودان رو اونجا کشت برای که میدونست اینا نگاهبان این گنج هستند. و بعد حال میگویند این دو نسخه اوستا رو یکیش از بین بردند و یکیش رو به با خود بردند که دادن در اونجا مقدونیه اون روزی یا اون سرزمین خودشون اون رو برگردان کردن به زبان های خودشون رو اون هم شد یک در واقع یک جهش بزرگی داد به دانش در آن بخش خب این سرنوشت اولیه اون مجموعه عوست خب یمان اینها خب آنچنان نبود که از بین رفت به کلی و هیچی چی نمونده بود. بی جما برداری های کوتاه کوتاه دیگری وجود داشته و بعد کسان ایرانی هایی از موجدای گرفته تا غیره که اینها رو به های گوناگون خب دانشی بود که از مردم اومده بود. که اینها رو آروم آروم از میانه های زمان اشکانی آغاز کردند به گرداوری و جمع آوری دوبارهش. و کشید به زمان دیگه ساسانیان و میان ساسانیان تا یک مجموعه ای دوباره فراهم کردند. این بار شد مثلا بیست و یک نسک, نسک که این بیست نسک رو همونجور که در پیشام گفتن به میشه گفت به سه بخش کلی تقسیم میشد که یه بخش دینی بود به سطلا گاتیک بهش میگفتن یه بخش قانون مداری و شهرارایی و می خواهی سیاسی بود که بهش داتیک میگفتند. و یه بخشی هم فرهنگی و هم بود که هاتیک یا هاتک مانسریک من، میگفتند. خب این مجموع دوباره به وجود اومد در زمان سال تا دوباره بلای دیگری اومد و اینبار از سرزمین های بیابانی دیگر و دیگر کتاب سوزان ها و از بین بردن هایی که در این سرزمین روی داد و شور تا به امروز هم به شکل های جریان داشته و داره آتش یعنی دانش سوزی در واقع بخواییم سوشو چیزی که امروز برای ما به جا مونده از تمام اون مجموعه بزرگ یک سری نوشته های پراکنده است که برخی از اینها منسجم برخی پراکنده ترن. اون بخش اصلی ابستای امروزه برای ما بخشی است که به یسنا یا یسنا ها نام هستند یسنا بخش از دینه اینه یه بخش دینیش بیشتر مونده چون باز با به واسطه موبدان و اینا حفظ شده در داد دین و آینهای های دینی که اون به سراغ مغز و در اون مایه اصلی یسنا هم گاتا ها هستند که <تصفيق> گاتا ها اصلا سراغاز این مجموعه هم بودن بخش گاتیک یا دینی که در پیرامون گاته ها بعد موبدان و دیگرانی که آینها اجرا اجرامی کردن شکلهای مختلف نیایش گوناگون و بخشهای های گناگون دوره این اومد و این رو هم در وسط خودش در واقع نگاه داشت خب این یسنها ها هستن که داره گاتا ها هستن بعد یشت ها هستن که یشت ها در تعریف و ستایش و سروده هستن در ستایش ایزدان که ما در های دیگری به این ای زدان بیشتر خواهیم پرداخت. سرودهای هماسی هستند، سرودهای اسطوره‌ای هستند، سرودهای بسیار زیبایی هستند که اینا میشه گفت فرهنگ فولکلور، فرهنگ مردمی ایرانیان هستش که در این آشنه ها شده. سپس داریم، ویسپرد داریم یا ویسپ راتو. همه رد ها، همه سرد گردان که اونم به دیگری هستش که به های مختلفی در دانش های هم توش هست از جانورشناسی، از شناسی، از, خوراک شناسی از کشاورزی گرفته تا بخش های دینی و و و. خیلی چیز میشه از توش یه به بخشی هم این سه تا شد. یکی هم داریم خوردهوستا و خرد اپستک که این خوردهوستا نیایش های روزانه زرتوشتیان هستن که این هم در واقع فراهم شده و ساخت و پرداخته زمان, زمان ساسانیان هست. کتاب امروز با تغییر تعاملاتی امروز هم در دست ما هست بشی وای کن. و میرسیم به پنجمی که بهش می‌گیم وندیداد یا وی دوت که حالا به شکل های مختلفی گفتیم قبلا ولی چون پرسش اصلی شما هم بود و خیلی ها ممکنه باز از ما بپرسن باید بگیریم که آری اینها یک بخشی از فرهنگ دینی روزمره ایرانیان بوده در یک پریود های از زمان تا چه حد به اینا عمل می شده نمیدانیم نمیشه گفت. وقتی هم که درونش میخونی یه چیزهایی است که نمیتونسته تونسته اصلا عمل بشه. مجازات هایی که برای نمونه با هزاران ضربه تازیانه یا شلاق اینام بوده توش اون زمان هم البته اینا نمادین بوده خب نمیتونسته به این صورت عمل بشه. چرا چه این چیزی بوده ؟ چرا اصلا این فکرها بوده این؟ قوانین اومده اونها را اولا باید تو زمان خود اونها بود تا به درستی درک کرد ولی مبنای اون مبنای نگاهبانی و نگاهداری از از پاکی و پالودگی بوده به های مختلف برای که اینا را اهریمنی برای که اینا می آلوده می‌کرد جسم آلوده میکرد روان آلوده می‌کرد ولی اینقدر دیگه حساس شده بودن و اینقدر دیگه تو جزئیاتش رفته بودن که دیگه برای هر جزئی قانون گذاشته بودن یه چیزی شبیه کتاب های برخی عدیانه دیگر که تو هر جزء زندگی مردم وارد می‌شه خب اینم بوده آدم نمیتونه اینا رو با مداد پاکون بگیره اینو پاک کنه نه این بوده حالا تا چه حدی هم بهش عمل می‌شده در اون گورها من هم نمیدارم ولی چیزی که امروز ما اینو به عنوان یک بخشی از اون بغچه‌بندی تاریخی که خوب و باطوشه اینم در کنارمون داریم ولی این نه مبنای دینی برای ما داره نه مبنای فلسفی برای ما داره نه مبنایی که اصلا بخوایم به اون عمل بکنیم امروز یا اصلا این چین چیزی نیستش حتی حتی بخوام بگم در میان زرتشتیان به مهاجرت کرده به هندوستان یا پارسیان گرامی اونها هم زمانی که از ایران مهاجرت کردن خب این یه بخشی بوده که براشون به جا مونده باشه اینه با خودشون بردن. و امروزم اونا اگر بخش از وندیداد رو فقط به عنوان بخش از نیایش ها می فقط حالت خواندن و سرائیدن رو مثل بیس پرد. مثل بقیه بخش ها. از هر تیکه که می که این بخش آینی رو پر کرده می و هیچی، هیچ ربطی، هیچ پیوندی به میشه شک گفتش که بخش گاتی که اون بخش دینی نداره. بنابراین اگر کسی هم Uh, میاد و امروزه میره از حالا این وندیداد مونده ممکن بود خیلی چیزهایی دیگر هم بتونن این بر اونور کنن از حق کدوم برنده که در اینجا رو ببینید اینجا نوشتی که خراب خب اینجا برای من نظرر داشتی اونم قابل قبولیست چیزی که با خرد هم خواهی نداشته باشه چیزی که با اون راستی هم خواهی نداشته باشه چیزی که با به قول معروف زمان و مکان هم خوا نشته باشه خب برای من قابل پذیرش نیست بالعمره شما نمیتونید اونها رو بیارید و بعنوان اینکه اینها دلیلی و گواهی است بر نادرستی دین بهی و نادرستی دین زرتشتی اونها فقط از میدانیم دیگه است هر از ورزی هست برای که راه دیگه ای ندارند اونها رو باید بری خودشون به پرسش بکشید که شما پس چه دارید و چه میگید اگر به راستی میخواهید کار به مقایسه و سنجش بکشد به کوتاهی وندیداد هیچ به پیوندی بنیادینی با دین زرتشتی بهی ندارد. یه سری قوانین حالا اسم چیز رو بذاریم و شریع زمان خودش بوده. اونها هم برخی شاید اجرا می شده برخی نمی شده ولی صده هاست که اونها دیگه در جامعه زرتشتی کاربردی نداره و هیچ بنیادین هم نیست و به ما هم کاری نداره این از وندیدات که بخشی از پوستش شما بود برای بله سپاسگوزارم از شما موید وزرگوزار در این زمان کمی که داشتیم بسیار گیرا باز کردید برامون و در این گاله برامون گفتی سپاس موید وزرگوزارم باره ایزدان میخواستم برای اون بگیم که در دین زرتشتی ایزدان چه نقشی داره؟ در عویستات رو میبینیم در فرهنگ ایرانیان بوده پیش از هنش و این در فرهنگ ما بوده میخواستم در دین زرتشتی چه نقشی داره ایزدان چه نقشی در دین زرتشتی دارم. بعد یک دشواری پیش اومد دوباره پرسشم رو میپرسم مو بده عضو میخواستم برای اون در ایزدان در دین زرتشتی به نقش ایزدان در دین زرتشتی چه هست؟ سپاسگزار میشم چنین برام برای اون روشنگری دفن. بله ای زدان میتونم بگم نقش مهمی داشتند و میتونن داشته باشند اگر درست بشناسیم این پدیده ها رو از کجا به وجود اومدن و چگونه و کار کرده عملکرشون در فرنگ زرتوشی چگونه بوده و هست ما یه دوباره یک گذار کوتاهی بکنیم برگردیم به زمان عشدرتش که در پیش در که کمی بازش کردیم خب ایرانیات تو اون زمان میشه گفتش که بخشی از پندارهاشون به به اصلاح خداهای گونه ها حالا امروز ما میگیم خدایگونه گونه این واجه ها میتونن خیلی گمراه کننده هم بعضی, وقتا، بعضی وقتا باشن وقتی واژه خدا رو ما به کار میبریم برای وقتی که یه سری پیورزی ها یه سری تعصب ها یه سری چیزا داریم او یه دفعه تا یک خدا شد خدایان یعنی یک دفعه مثل که زمین به آسمون میاد آسمون به زمین میره در سال یه خود مدارک کنیم یه خود بریم توش ببین داستان چیه اینا رو بهشون مثلا یزتر خب یزتر که شد ایزد یعنی سزاوار ستایش یعنی یه چیزایی که مردم احتر... بزرگ میداشتن احترام میذاشتن ستایش میکردن و اونها رو نمایندگان بخش های آفرینش در واقص رو بذاریم میذاشتن برای هر کدوم هم یه رولی داشتن از ایزد تیر و باد و حالا ایزدهای دیگر گرفته تا اون بزرگتراش که حالا پیش از اینکه که اهورا مزدار را بیاد و این رو بگه عنوان نماد همه اینها و همه رو در اون در واقع جمع کنه ما وارونا رو داشتیم و میترا و مهر که اون همیشه بوده این وارونا و این میترا دوتا خدایان بزرگ بودن به صراح. بعد یه سری هم ایزدانی که در واقع میشه گفت همکاران همدیگه به حساب میامدن و اگر اینجوری بگیم دیدگاه ایرانی حتی تو اون زمانش نسبت به کل هستی و آفایدهش اینا بوده که یه سری یک سری سمبلها و نمادها و ایزدان و خدایان چرچ شوذریم اینها با هم با همکاری همدیگه به هم پاس میده در این, این آفایده شد یعنی این یک چرخشی بود بین ایزدان نیک که در واقع دست به دست هم پیدایش به پیدایش این چرخه زندگی رو و چرخی آفینش رو به پیش می بردن که اینها در زندگی روزمره خودشون هم با شاید با حالا با نیایشا با این گوناگون اینها رو در واقع نقش بهشون میدادن تو زندگی روزمره. خب ازون ضبطتر چه کاری کرد اومد اینها در واقع آقا جان، اینجوری نیست. یه خود از این پندارگرایاتون بیان بیرون، خب؟ شما گفتید به دنیای اندیشه اینا رو بگشونید. از آسمون بیاید بیرون، تاشون رو یه خود پاتون رو بذارید زمین. و اگر می‌خوای خدایی رو بشناسید، حالا ما به زبان امروزیمون ساده بگیم. اگر بخوای خدایی رو بشناسید، این باورمزداست که مجبور این دانشها و همه این نماد همه اینا هستش. خب این پیام بود توی ها ما در واقع رد پایی از ایزدان به اون صورتی در فرهنگ کلی بود نمی در, در دینی که در واقع پدید آمد از پیام های زرتشت در دین زرتشتی آیندگان آروم آروم این ایزدان یه نقشی دوباره اومان پیدا کردن منطقه این نقش نقش نمادین بوده و هست. یعنی به عنوان حال اینا اگه خیلی بخوایم به زبون ساده بگیم همکارانه آفرینش هم همکاران انسان و خدا در این آفرینش در این یگانگی آفرینش هستن یاد اون باشه که من اگر روی یگانگی جوان پایفه شدم به جای یکتای خدا این به ویژه این کارو کردم برای که او خدا خدای یکتاست اون که اصلا سخنی درش نیست که بخوایم باز مساله دو خدایی و چند خدایی اینا تو اونا باز میگم اونا دیدگاه های خودشون میان نگاه می و این چیزها رو میگن اما وقتی که ما پیوستگی همه این چیزها رو با هم ببینیم یعنی خدا و آفرینش در هم هستن با هم هستن در این در هم با هم بودن تغییرات هست دگرگونی هست پیدایش ها هست این میشه گفت چرخه ایگزدان هم که تمامی این آفرینش رو یا به صورت بخشای گناگونه طبیعت بخش احساسات انسانی بخش اخلاقی همه اینها رو نمایندگی می در بر دارن و اینها توی این مجموعه با هم میچرخند و در هم هستند و با هم هستند و زندگی رو پر میکنند. امروزه این نقشی که برای زرتشتیان دارن چیز نقش نمادین است. نقشی که توی گاهنامه زرتشتیان هست که هر روزی یک نامی دارد روز این زدان هست وقتی ما امروز مثلا می, گویی می یا روز تیر، یا روز باد، یا روز فروردین، یا روز رشت، یا روز حالا نام های امشاسپندان هم به قول معروف توش میاد امور خورداد و امورداد و عشا و همه اینها برای ما دیگه نماد این چیزهایی هست که داریم باید زندگی میکنیم و میتونیم اینها روش مدیتیت بکنیم، روش جرف اندیشی بکنیم روش نگاه بیشتری بکنیم، پیوند اینها رو در زندگی طبیعیمون عشاییمون امروزیمون نگاه کنیم ولی همچنان ایزد از چرا؟ برای که ستایستزان برای که باید به اینا احترام بذاریم اج بگذاریم به آخشیچ ها مگه ما نمیگیم باید عرش بذاریم به عناصر طبیعت باد و آب و آتش و زمین و اینا جازه ایزدان هستن همه اینا ستایستزان همه اینا ایزد هستن نیکویی و داد و, بخشش و اینها همه ایزد هستند ستاسدان باید داد رو ایزدی دانست تا به اون رفتار کرد باید مه رو ایزدی دانست تا به اون رفتار کرد یعنی این باورها هستند که ما رو در اون راه میسازند و به پیش میبرند بنابراین نقش ایزدان چه در گذشته و چه امروز نقشی مثبت و سازنده است و بعد در جایگاه خودش قرار بگیره نه اینها خدایانی به اون محله هستند که همه مشغول آفریدن نمیدونم چیزهای مختلف در آسمان و اگه ما از اون فکرهای پندارگرایی و اوهام بیایم بیرون و پامنورو زمین بذاریم این ایزدان فقط در درون انسان جای دارند و به انسان کمک میکنند برای در واقع راهروی در اون راه طبیعی سپهری آسمانی سرشتین و گوهرین انسان در راه راستی و بله سپاس گزارم از شما همین که گفتید من نگاه می کنم به این ایزدان به این جشن های ما که همه بر پایه اونها شکل گرفتن همه در پیوند با داستا یا طبیعت هستند این نشون میده که نیاکان ما همه در اندیشه این که چگونه زندگانی کنیم، نیک زندگیی کنیم، چگونه شاد زندگی کنیم، چگونه اینها رو پاس بداریم و این مه که داشتن به طبیعت با عشق و هستی نگاه میتردن، ستایش میکردن، آب رو، ستارگان رو، زمین رو، این یعنی یک پیوند بسیار فهم با مه با خودش که نه جدا میدونستن نه خانی میدونستن نه دشمن میدونستن بلکه بخشی از این گیتی میدونستند و جدا نمی دیدن و همه با هم در آمیخته بودن همه در همین که هستی داره به پیش میره ما هم با این ها به پیش میرفتیم امید که دوباره این گونه بشه و ما با این نگاه کیاییم نهنمون نگاه کنیم بگیتین نگاه کنیم به دیگران نگاه کنیم مهر رو گفتیم، بذار من این انگشت دیگه روی واجه مهر بذارم برای که بسیار نقش بازی میکنه در فرهنگ جهان خب حالا ما از اون میدونیم دیگه به میترایسم و حالا کاری نداریم یا مهرگرایی مهرپرستی نرم بذاریم کنار ولی مهر به عنوان یک مفهوم مفهوم بودیاندی در از گذشته‌های بسیار دور بوده اصلا توی اون تعریف هایی که گفتم این پیوستگی جهانی پیوند، این مایه پیوند مهر است. مهر هم میشه بهش گفت اون مهربانی که این روز ما میگیم حالا این مهر بانیدن میتونه معنای گراغون داشته باشه ولی مهر نیروی کشش است. نیروی به هم پیوستن چیزهاست که اون مایه چسبندگی است مایه آمیختگی است واجه میترا یا میخته این آمیختگی که میگیم میخته میترا از همونجا میاد باز یعنی باز این مهر است که به هم میآمیزد در هم میآمیزد به هم نزدیک میکنند و پیوند میدهد بنابراین بسیار مهم است این مهر و مهربانی کردن و مهر گستری کردن اون هم بخش بزرگی از این از این دین اوجامینی است بله سپاس که در این باره هم روشنگری نموگید موبده گرامی موبد گرامی میکنم در این باره برامون بگید که برای همین همون بگید که آیا دین بهی یا دین زرتشتی برای قوم و نیجاد یا یک خاصی هست یا نه هر کسی میتونه با بیاد و پیو این دین بشه در این باره هم یک روشنگری بفهم بله میتونم بگم که این دین برای یک نژاد است برای نژاد انسان <تصفح> برای که فقط یه نژاد رو همین وجود داره <تصفح> اونم نژاد انسانه البته اگه ما از گونه های دیگر هستی یا جانوران اینا حرکت رو سر جای خودشون ولی در مورد انسان ها مردمان مردم و مردمان جان وقتی گفتگو کنیم همه چون از یک ریشه این پس یک از تبارهای گوناگون حالا اسم ملیت های گوناگون به خودمون گرفتیم فرنگ های خوناگونه برای خودمون ساختیم رونمان رنگ رنگروی ظاهریمون با هم فرق کرده و خب اینا به جای خود آره این برای همه انسان است یک اسمشو بذاریم یک آرنگ یا شعاری که داده میشه شعار که باز شعار وقتی میگن واژه خوبی نیست برای خودم یعنی یک،, یک چیزی که آدم میتونه اونو تو ایران هم خیلی دوستان میگن خوبم میگن این هم بابش بیاندیشیم که نخص انسانی بیاندیشیم ملی زندگی کنیم و دین هر کس هم برای خودش تو چارچو به خودش این انسانی اندیشن در درجه اول یعنی باز انسان رو در مرکز محوریت قرار میده در کنار خدا و آمیخته با خدا این... مورد و بخش پایانی با صحبت بود که در مورد این که این دین بگی برای نجال یا قوم خاصی یا تیده خاصی هست جننه که بخش پایانی بلیده شد و اینم می رو برای این یک بار کوتاه میگم که ساده نه این برای هیچ مردم ویشهی نیامده است. برای همه است و پیامگیران مردم هستند. همه مردم و انسانها را بگیم مردم به معنای انسانها. بنابراین به یک می که یک نژاد فقط ما داریم برای کور و اون نژاد انسان است. انسانی که زندگی شده در هماهنگی با بخش های دیگر طبیعت باید سامان بده و به پیش ببره بنابراین برای همه است و هیچ ویژگی به هیچ ملت خاصی نداره البته با توجه به اینکه زادگاه و خواستگاه دین به ای ایران زمین هست و در ایران زمین بوده که هزاران سال به عنوان به پایگاش بوده مردم این دین رو داشتن رهبران جامعه و شهراراهاشون باز با همین افکار بودند و زندگی کردند و شهرارایی کردند و بنابراین در تمام بخش های جامعه هم جاری و ساری بوده معروف بیگمان برای ایرانیان از یک جرفا و از یک ریشه و بونه دیگری برخوردار است ولی بسیاری هستن از از امروزه به ویژه قدیم هم بودند در زمان خودش و زرتشت هم در گاتهام حتی این اومده که تورانیان فریان ها و دیگران زرتشتی بودند ما در سرزمین هایی که امروزه سرزمین های عرب صداد ما میته میشن زرتشتی داشتیم و و و امروز هم در ملیت های دیگر داریم برای که گفتیم و در تعریفش هست. پیامش پیام انسانیست، پیام همگاریست، پیام نیجو راستی همین انسانیست. سفاش گذاریم از شما. موباده بزرگ با از اینکه در این برنامه هم با ما همراه بودید. من از توی خودم و دستندرکارون این برنامه و جنبش بشه نوزایی ایرانی از شما سپاس و امیدواریم که در برنامه های دیگر هم از دانش گسترده شما بهره بیشتری بگیرید خب من در پایان تر بقیه برنامه های پیشتر که آگهی رو می ولی پیش از اینکه آگهی رو بدم اگر شما پایانی و به دوزگویی دارید با بینندگان اون رو انجام بدیم تا من بخش آگهی انجمن منتر رو هم برای همیهنان رو پرشونم. نور بوده بزرگار گویان منم از شما سپاسگزاری می کنم و یک بار دیگه رو به تمامی بهدینان و تمامی انسانهای نیک خواه جهان میخوام بگم که باید بکوشیم. باید کنشمن باشیم. در چارچوب ذهن خودمون فقط نگه داشتن این چیزا بسنده نیست اندیشه نیک تنها آغاز است بعد به گفتار و کردار نیک هم کشیده بشه اما با این توجه که برای گفتار و برای کردار در زمینه اجتماعی هر کسی باید به یک دست کمی از پختگی در واقع فکری و اجتماعی رسیده باشه تا بعد بیاد برای بقیه مردم بخواد به صلاح نوست پیچی بکنه اینه که هر کسی رو هم کاردان خودش رو پیدا میکنه اونا که تجربه بیشتری دارن کارشناس بهتری هستن به اونا نگاه کنیم نه به دهن هر کسی هر کسی باید آزاد باشه که باور و عقیده خودش رو بگه اما اون مسئولیت ها اون پاسخگویی ها اون قانونمندیام ها هم همه باید در نظر من هم شما را به او میسپارم و بهتون به, به میگم آرزوی رضوی شاد دارم تا بارهای آرده که دوباره با هم یکی نگفت داشته باشیم بله سپاس از شما و بینندگان از من به پایان یکی دیگر از سری برنامه‌های های رسیدیم به این برنامه کاریز از سوی جنبش نوزایی ایرانی برای بالا بردن آگاهی همیهانان پارسی زبانان در سراسر که آگاهی و دانشون در این باره بیشتر و بیشتر بشه من میخوام یک آگهی که برای انجمن مانترا هست و برای همیهانان اونجا نیشانی هاش رو بذارم همیهانان ما از هر کجای دنیا هیچ تفاوتی نمیکنه از هر کجای دنیا توانید با انجمن مانترا با این نشانی که ایمیلی که در پایین اومده برای خود موبد بزرگوارمون هست حالا تارنمای موبد بزرگوارمون هست و از این راه میتونید با انجمن و موبد بزرگوار در پیوند باشید در فیسبوک هم انجمن مانترا میتونید از اون رو هم در پیون باشید و از هر کجا که هستید میتونید از آموزش دین بهی و من بشید و سپس گزینش نخوص آموزش و سپس گزینش میتونید تیش تفاوتی نمیکنه از کجا هستید و چند جادو که مورد بزرگوانون گفتن هر با هر زبان و هر قوم و هر کشفه هر کجایی که هستید از راه دور میتونید آموزه ها رو بگیرید و این دین رو برای زندگانی برای خود این هم نشانی های انجامم بود اما ایمیل مو بدود نشانی های بیشتری در برموهای دیگر هم خواهید من از شما همیه که با شکیبایی ما رو دنبال کردید و برنامه های ما رو دنبال میکنید سپاسگزارم اصولی خودم و این برنامه من بوده و و همه شما بدرود میگم تا برنامه دیگر شاد و پیروز و سربلند باشید پاینده ایران مواده بزرگ بار بدرود باشید بدرود و همچنان پاینده ایران بدرود. پاینده ایران